راستی برای تهیه بلیت چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ مجید را میگویی؟ بله. به او تلفن کردم، دو بار. مجید چه گفت؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است. عالی است. من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم. چه فیلمی ایرانی یا خارجی؟ فیلم ایرانی خیلی خوب است. خوشحالم که میتوانم همزمان با جشنواره بین‌المللی فجر به سینما بروم. من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره به سینما میروم. فیلم های سینمای ایران بسیار جالبند بله فیلم ایرانی در جشنواره خارجی هم موفقند من آقای مجید مجیدی را می شناسم. او یک کارگردان موفق ایرانی است درست است او از جشنواره فیلم برلین در آلمان هم جایزه گرفته است من فیلم بچه های آسمان را دیدم کارگردان این فیلم زیبا آقای مجیدی است